خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن غم دل چند توان خورد که ایام نمان گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن مرغ کمها و سله را گو غم خود خورد که برو رحمان کس که نهد دام چه خواهد بودن باده خوررق مخر و پند مغلد منیوش اعتبار سخن عام چه خواهد بودن در رنج تو همان به که شود سرد به کام؟ دانی آخر که به ناکام چه خواهت بودن؟ پیر میخانه همین خواند معمای دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن؟ بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل تا جزای من بدنا چه خواهد بودند